به تیغم گر کشد دستش نگیرم وگر تیرم زند مننت پذیرم کمان ابرویت را گو بزن تیر که پیش دست و بازویت بمیرم خم گیتی گر از پایم درآرد آرد به جز ساغر که باشد دست گیرم برای ای آفتا به صبح امید که در دست شبه هجران اسیرم فریادم رسی پیر خرابات به یک جرعه جوانم کن که پیرم به گیسوی تو خوردم دوش سوگند که من از پای تو سر بر نگیرم بسوزین خرقه تغبات تو حافظ که گر آتش شوم در وی نگیرم